الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء وسيد المرسلين والي وصحبه أجمعين أما بعد نبلي أم بحث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هاشم هنوز بحث نوزاديش وتولدش هاشم انا ما قلتيم ان شاید صحبتمون کم باشه، الله از زموز باشه و گفتیم می‌لگر مزاحمت و از کار میشه از کارو میشه خفیف‌تر کند. این تسبیح‌ها سبحان الله سبحان الله ده بار، ده بار و الحمد بار 10 بار ثابته و بیست بار بیست بار و سی بار سی و سه بارم ثابته ما داریم در احادیث صحیح ده بار ده بار بیست بار بیست پنج بار و سی و بار،, بار الله هم سبحان الله هم, هم و هم الله اکبرشه لیکن الان یک مزاحمتی ای که اینجا میشه دوستانی که الان دیر اومدن نماز میخونن ما هم صحبت میخوام بکنیم یکم مزاحمت به رئیشان هم میشه خب بالا کل حفت دیگلا ما وقتی دیگر نداریم همه هم دوستان عجله دارن هم باید ادا بکنیم حالا هفته یک بار کم شده و اما به نعمت رب کفحت دیگه وظیفمون در قبار این نعمتی که خدا بهمون این نعمتی که بهمون داده این اسلامی که بهمون داده حداقل ابرازش بکنیم حداقل بگیم چه نعمتی بود این محمد صلی الله علیه و سلم چی کار کرده برای دین ما در روز سه بعد غذا میخوریم نیاز به غذا داریم لیکن نماز رو باید پنج وعده بخونیم ما نیاز به خدا داریم همه وقتمون و این نعمتایی که خدا بهمون داده از دین اسلام از این همین نمازها باید قدرشو بدونیم و تنها روحلش همی تذکرات همین تذکراته همین اظهار شکر و اما بنعمه ربک فحده ما گسرات مصطفی صلی الله علیه و سلم اینجا میخوام ذکر بکنیم به خاطر همینه ابراز شکر و سپاس اینکه خداوند به ما هدایت داد که میشینیم پیامبری ایمان بیاریم به آخرین پیامبران خدا نگاه بکنیم در روی کره زمین چقدر مخلوقات هستن از همین بشر خودمون از این همه مخلوق چند درصد این مخلوقات الان مسلمونند و اون کسی که مسلمون واقعا چند درصدش هم تسلیم شده هست و در حدیثم اومده اونهایی که الان وارد بهش میشن بدون عذاب و بدون حساب و کتاب از هر هزار نفر یک نفرند دیگه 999 نفرش دیگه باید حساب و کتاب و خودشون رو بکنن. واقعا هم همین لمس میکنه در زندگی دنیاش چقدر از مردمان از چف راست خودمون نگ از این مسجد خودمون مثلا در نظر بگیریم چند درصد در مردم خودمون میان مسجد نماز میخونن و شکر و خدا میخوان به جا بیارن قدر دینشونو میدونن خیلی کمند اندکند چند درصد در از مردم فرآن میخونند یا شب قیام میستن یا نماز فرضشون در, در مسجد میخونن نماز مغرب که میشه ماشاءالله چهارسنی سفت هست ولی نماز صبح شد یک سفت و یک سفت و نیم دیگه شاید به زور برسه اینه که ما وظیفه خودمون دادیم که این تذکرات رو بدیم و یک مذاکره با هم داشته باشیم در سیرت محمد صلی الله علیه و سلم. دوستان تقاضا دارن که وقت این صحبت ها از 10 دقیقه به رفت ساعت حد اقل برسه ما هم نگیم چشم در حد امکانمون تا جایی که توانمون برسه چشمو در خدمت هستیم ما همین امروز و فردا فقط در قشم هستیم، الان با هایی که هست. و بقیه روزها هم خیلی دوستان میدونن که وظیفه تدریسی به ماست. حسین دوشنبه بوده، شنبه، چهارشنبه کلا نیستیم در جزیره قشم. لیکن هو این وقتی خدا به من داده و این جلسه ای که الان هست در خدمت شما هستیم با سیرت محمد صلی الله علیه و سلم خداوند طول بده. که این وقت کم در این وقت خیلی کم نمیشه این نعمت بزرگ نعمت دین اسلام و سیرت را در این وقت کم ادا کرد دوستان تقاضا دارم که کمی بیشتر باشه حضرتل به مسائل سرعیش هم اشاره بشه خیلی از مباحث با سر بشه لیکن حالا هفته یک بار همین ده دقیقه تا 21 الی همین توانمون میرسه هم توانش خودتون خب علی کل حال وارد بحث بشیم دیگه وقتمون تو نره فقط یک تذکری بدم از درس قبل درس قبل یا صحبت هفته قبلمون بحث ابرهه بود ما درسی گرفتیم از قصه ابرهه علم ترى كيف ربك به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم في تضلیل و ارسل علیهم طیرا تا آخر این سوره مبارکه ما گفتیم از این سوره خیلی درس ها میشه گرفت مهمترین درسش اینه که دین خداوند اسلام خداوند محترمه بسیار محترمان بشه باید به این دین احترام قائل شد این یک درس در درس بعدی این بود که اگر قرار باشه اسلام محترمه دین و دیانت محترم مسلمانان محترمه خدای نکرده کسی به خودش اجازه نده به مسلمان اهانت بکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی به کعبه اشاره میکنند میکنن و میبیند خون مسلمان و انسان مسلمان شرفش از تو بالاتر اشاره به کعبه میکنن چرف مسلمان خیلی بالا. کرامت داره در نزد خداوند، من بهش داده، فه بهش داده، بسیرت بهش داده، درک بهش داده نباید اهانت بشه خاطر همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از سیری زدن من کرده نباید یک شخص سیری زده،, زده بشه حالا غیر از بردهای تربیتی که هست در تکریم یک مؤمن، یک مسلمان، یک بچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که بچه تا تکش نزنید. 7 شد دستور بهش بدید که نماز بکنه. اگر بازم نماز نخوند تا 10 سال صبر 10 سالگی صبر بکنید اونجا هست که کوتکش بزنید بی که نه اون کوتکی که بعضی از پدران ما شاء الله تشکرات میدن این حق خداست این حق بودوپرین حق خدا تو نماز خدا کی وقت زده بشه 10 سالگی ولی متاسفانه بعضی از پدران و خصوصا مادرها صبر حمل ندارند. ندارن بچه‌شون از همون 2 سالگی 3 سالگیش از کوتکاریش بکنن کوتکاری از شأن اسلام و مسلمانان نیست. کتک زدن و دست بلند کردن و اهانت کردن و توهین کردن از شان ماها نیست. سعی بکنیم احترام به خودمون و اطرافیان خودمون یاد بریم چطور به اون بچه از کوچیکی احترام یاد بریم تا اینکه هفت ساله که شد حرف ما رو گوش بده. سعی بکنیم الگو باشیم. این درسی هست به تمامی ما پدران که از همین سیرت مصطفی صلی الله علیه و وسلم درس بگیریم. قصه ابره یک جنبه بود. قصه ام دکتر ابو سفیانم رضی الله عنهما هم جانب دیگر که درسی بود برای زنان که غیرتشونو برای اسلام کنار بذارن خیرخواهی اسلام رو پیشه بگیرن خیرخواهی خواهرانشون رو پیشه بگیرن وقتی که بحث پیشنهاد خواهرش رو داد که با رسول الله ازدواج بکنه بس یه بعد ثوبه میاد که یکی که من از شیر خوردم این اولین کسی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم ازش شیر خورده دومین کسی که از شیر خورده رسول الله صلی الله علیه و سلم حلیمه سعدیه هست که در ها هم هست هرچند که در های سیرت قصه هایی هست که ثابت نیست از همین قصه حلیمه و شیرخواری رسول الله صلی الله علیه و سلم اون قصه های که لا صحیح نیست من فقط اشاره کلی بهش میکنم چنین که حلیمه میگه من همراه زنانی اومدم به مکه خواستیم که برای خودمون یک نوزادی انتخاب بکنیم که پدرش خرج ما, خرج ما را بده و بتونیم زندگی می کرد. اومدیم همراه چند تا زنی هیچ کس حاضر نشود محمد صلی الله علیه و سلم را تحویل بگیره. محمد صلی الله علیه و سلم یتیم بود. ما گفتیم هم هم هم, هم, هم وقتی که رسول الله یا وقتی که رسول در شکم مادرش بودن پدرشون فوت شد. رسول الله یتیم به دنیا آمدند و این یتیمیش درسی برای نوزادان داشت، برای بچه‌ها داشت، برای ماها که خداوند میخواهد با یتیمی رسول الله صلی الله علیه وسلم یک دلداری بده برای امت که ما بندگانمون راهان نمی کنیم اگر قرار بهترین بشر ما در اینچنین سختی بزرگ بشه پس شما هم از باب اولا محبوبترین مخلوقات در نزد خداوند رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی با این وجود بدون پدر به دنیا میاد پدری نداره که بزرگش بکنه، خرجش بده، بالای سرش باشه، بعدم مادرش هم از دست میده. درسی باشه برای ماها که آه و تاب نکنیم، ناله نکنیم، نالش نکنیم شکر خدا را بگیم. و اما نعمت ربک فحدث. ده سر خداوندا به رسول الله صلی الله علیه و سلام. المی یتیمن فآوا. یتیم به دنیا اومده بود. این درس اولی که ما از قصه یتیمی رسول الله صلی الله علیه و میگیریم، یکی از درسهای دیگری که در ضمن همین یتیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که ما بدونیم هیچ وقت خداوند بندگانش رو رها نمی‌کنه و هیچ وقت خداوند دوست نداره بندهش احانت اهانت بشه حکمتی داره از این یتیمی از جمله حکمتاش اینه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا آمدن مجبور شدن خانوادش او را به صحرا ببرند همین در صحرا رفتنش سبب شد که خیلی درس‌ها یاد بگیره رسول الله آرامی با یا نمیدونم یک رفتار خاصی با حیوانات که همون گفتیم سالاری که بودند رفتارهایی از اون حیوانات یاد میگیره یا از اون مخلوقاتی که به دوری از شهر و دوری از گناه و معصیت و شرک و این مسائل از خیلی چیزها الله دور میشن. وقتی که رسول الله تهمت زده میشه که کسانی هستن که این دین را بهت یاد دادن چل سالاله گذشته از عمر رسول الله صلی الله علیه تهمت به رسول الله میدنن که بله کسانی هستن که بهت یاد میدن از یهود و نصارا لیکن وقتی که ما سیرت مطفی برمیگردی که رسول الله یتیم به دنیا اومدن بعدم در شهر بزرگ نشدن کجا بود اون کس... کجا بودن اون کسانی که بیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد بدن؟ کسی نبود سوادی هم نداشت چون در صحرا شده بود در صحرا مدرسه هست در صحرا عالمی هست خسن با حیوانات کسی نیست در همین یتیمی رسول الله حکمتی بالایی هست یکی از حکمت‌های دیگر اینه که انسان یعنی همون یتیمی سبب شده که به صحرا بره به یک جسمی قدرتمند داشته باشه ما می‌بینیم کسانی که در صحرا هستن با اون زندگی طبیعی با اون نمیدونم حیوانات زندگی میکنند جسمشون قوی تر از دیگرانه. این اینم یکی از های خدا خداوننده که این یتیمیش سبب بشه در اون صحرا با اون سختی ها کلنجار بره تا قدرتمند بشه بتونه در مقابل سختی ها بیایسته زندگی صحرا واقعا سخته زندگی بیابون واقعا سخته این درسایه از همون یتیمی خب بحث فود حلیمه سعدیه میگوید که اومدیم این روایت سفسه ضعیفه فقط تذکرام بدن فقط الا اسبابی که شما بدونید که این سفسه هایی هست گفته شده هرچند که واسطه نده ضعیفه حلیمی میگه همراه زنان اومدیم کسی راضی نشد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحویل دیگه چون پدری نداشت چون پدری نداشت ما هدفمون این بود قصدمون این بود که پدر اون فرزند خرجی من رو بده ولی کسی حاضر نشد میگه من حاضر شدم، نصر راه رفتیم، برگشتیم به شوهرم گفتم، گفتم که من اینو تحویل میگیرم، گفت باشه تحویلش بگیر. می میگه حالا سینم شیردار شد، هیچ کس از اینها شیر نداشت. این از اولین برکات رسول الله صلی علیه و خودش ذکر میکنه. غیر از این میگه وقتی که برگشتیم، غیر از اون سینم که همیشه شیردار شده بود، حیوانات من هم وقتی که به صحرا میرفتن، همشون شیردار برمیگشتند عکس حیوانات دیگر حیوانات دیگر در اون چراگاه می اومدن ولی شیردار نمی شدن لیکن الا اونچه که صحیح هست از قصه حلیمه سعدیه قصص حلیمه سعدیه چیه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنند میگن که من وقتی که پدرم و وقتی وقتی که مادرم و پدر بزرگم من را تحویل حلیمه داده بودند که مادر شیری من هم هست با برادر شیریم با برادر شیریم رفتیم به صحرا میگه در زمنه همون رفتن همون دیدیم که دوتا فرشته اومدن در بعض از روایات دوتا فرشته در شکل یک شاهین سفیدرنگی بودند اومدن سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم را شکاف دادند سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم را شکاف شکاف سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم دوبار صورت گرفته یک بار در سن سالگی، یک بارم الان در بعض روایات در سن دو سالگی بعضی بعضی چهار سالگی فرشته میاد سینه رسول الله را شکاف میده قلب رسول الله صلی الله علیه و را بیرون میارند قلبش رو که بیرون میارن در یک کاسه طلا از کاسه طلایی که از طلا ساخته شده و آب زمزم هم درش هست قلب رسول الله را بیرون میارن شستشو میدن و یک تیکه گوشتی که قسمت و نصیب شیطان از در جسم تمامی انسان ها از جسم رسول الله بیرون میارند اون تکه سیاهی اون قتلاح چه حکمتی داشت که خداوند این تیکه رو درمیارن از قلب رسول الله صلی الله خدا میدونه ببین شاید بعضی ها مثلا بگن این قطعبی رو اومدن به خاطر این بود که رسول الله هیچ وقت به طرف جمهوری به طرف گناه نره و رسول الله هم تا وقتی که به 30 سالگی نرسیده بود تا در اون موقعی که هنوز الله به رسالت در بود هیچ گناهی انجام نداده و هیچ شرکی هم به خدا نیورده هم که در روایات اومده خب قلب رسول الله رسل الله علیه و سلم میشورن بعد دیگه شستشون میدن دوباره سر جاش بر می دوباره میدوزن سینه رسول الله برادرانش میان می نزد مادرش مادر بیا که محمد را کشتن بیا که محمد صلی علیه رو که دوان دوان الله, الله علیه و سلم را کشتن وقتی که میان در نزد دوان دوان میان در نزد رسول الله رسول الله علیه میبینن که چهرش عوض شده میان دیگه بعد میاد پتش که تحویل مادرش میدن در بحث همین قصه حلیمه سعدیه و قصه بنی سعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر از اونها میخوره قصه هم داره که ظاهر میشه در قصه جنگ حنین در جنگ حنین جنگ حنین که بعد از چندی سال در وجود رسول الله در مدینه رخ میده در شیل جنگ هنین حوازن که از فائف بودن از بنی سعد بودن میان در نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن یا رسول الله خواهرانت و مادرانت را اسیر کردی جنگ شده میان میگن یا رسول الله ما حقی در گردنت داریم ما حقی در آن، گردنت من شیر شیرلا. شيرهيهم بفتان دارنها من ذنب فلما نشيره فقد قال العربي هم حاس لكن الله إن شيركي هاس من ميجا أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير أبقت لنا الدهر حتى على حزن على قلوبهم الغماء والغمر إن لم تدركها بغماء تنشرها يا أرجح الناس شلما حين يختبر أمن على نصفة كنت ترضعها إذ فوك يملأه من محاضنها او محضها ضرر الله إن شير كننك يا رسول الله بر ما من نت بقدر بعد إنك در ما بزور شودي واز ما شير خودي بعد رسول الله صلی الله عليه و سلم الله میاد در قصص در دنده‌ فنن میگه رسول الله اما ما کان لی و لبنی عبد المطلب فهو فهو لله ولکم میگه که برای من بود اون غنایمی که گرفتیم و اون اسیریه گرفتیم هرچی که برای من و برای قریش برای خودتون بخاطر برا این مننت منت منتی که برگردن ما دارید بعد انصارم میگن وما کان لنا فهو لله ولله رسول و با که برای ما شده برای خداوند ورسوله امام ابن كثير میگه هذا كله من بركته العاجله في الدنيا فكيف ببركته على من اتبعه في دار الاخره میگه از برکت عاجل دنیویش این از برکت دنیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون شیر خاریگی بوخت بخاطر شیر از اونها سبب میشه که اونها آزاد بشن سبب میشه که اون غنیمتاشون مال مال ثروتشون دوباره به برگردونده برگردنده بشه این در دنیا عاقبت کارشون رو دیدن میگه چه برسه به کسانی که تابع این رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن و در روز آخرت جلو خداوند حاضر میشن و مسلمانند و تابع رسول الله میشن این دیگه خودش یک برکت خاص خودشه این دیگه برکت ابدیه. این برکت عاجل دنیا بود اگر اینچینین برکتی داشت رسول الله صلی الله علیه در دنیا ما هم منتظری این باشیم که این نمازه هایمون روز قیامت بیان با تنها و نه یک مسئله هست الان من جاهایی چون قصه ها را از ذهن خودم میگم از حفظ خودم میگم جاهایی هست الان از ذهنم میپره در ذهن در قصه حلیمه سعدیه چیلینه که وقتی که سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم دخته میشه فرشته میگه که یک از فرشتگاه میگه که رسول الله را در یک کفه بذار ده تا از امتش در یک کفه میگه توازن تو هم میگه که من وزنم بیشتر از اونها شد میگه گفتن پس ست تا دیگه انتخاب بکنیم 100 تا هم انتخاب کردن بازم میگه من سنگین تر شدم هزار تا انتخاب کردن بازم من سنگین تر شدم گفتن گفت. لو وزنته بأمته لوزنهم پرشین می که میگه اگر با امتش هم وزنش بکنی در یک کفه رسول الله را بذارید و تمامی امتش که خواهند من تمامی اونها که تابعش میشن رسول الله اگر در یک کف داده داشته بشه ترجیحتر میشه و تنگینتر میشه در مقابل کل امتش بله بهترین رسوله بهترین پیامبرانه برگزیده هست خیر البشر خیر الرسول کسی بهتر از اون نیست بله نصف شب و بیشتر از نصف شب نصف شب به قیام می ایستاد نصفه اول و منه قليلا برم می میکرد کی میتونه تا داره کی میتونه مثل رسول الله این چنین استقامت بکنه هیچ کس نمیتونه لیکن همونطور که علما گفتن مالای یود رک و جله لا یترک كله چیزی که همش نمیشه دست بهش پیدا کرد قسمتی از اون رها نمیشه و نباید رها کرد اون قسمتی که میتونیم تا جایی که توان توانمون میرسه سعی بکنیم رسول الگو قرار بدیم تا اینکه محبت خدا و رحمت خدا نصیبمون بشه و خدا من به امر بده سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم